اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصاعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلة السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء السلام عليكم يا أهل بيت النبوة بحمد الله در مباهسه آیات قرآن در آیاتی که به اون آیات در وحدت شخصی وجود به اونها تمسک شده بود در اون آیات بودیم و بحمدالله دسته از آیات قرآن در این زمینه به بحث گذاشته شد و استدلالات قائلین به وحدت وجود در این زمینه همه ابطال شد آیه بعدی که بعضی به اون تمسک کردند و جدایی از تمسک این دسته از افراد در السنه هم احیانا متداول هست تمسک به این آیه این آیه شریفه هست که و نفخت و فیهم روحی فقعو له ساجدین من از روح خودم در این قالب گلیه انسان دمیدم در آیه 28 سوره مبارکه هجر این مطلب آمده و از غال رب که للملائکه این خالقون بشرم من سلسال من حملن من حملن مسنون که در خلقت انسان از گل و خلقت قالب گلی انسان آیه آی بیان شده فعضا سویتهو و نفخت و فیهم روحی او ساجدین به این آیت هم و گفتن که اون چیزی که از این آیه فهمیده می شود این است که خداوند متعال تکه از وجود خودش رو در ما قرار داده و این یعنی وجود ما همون وجود خداوند متعال هست وجود ما از نفخه روحیست که خداوند متعال از خودش در ما دمیده لذا وجود ما همون وجود خداست و این مفاد وحدت شخصی وجود خواهد بود و اینی که تکهی از وجود خدا در وجود ما هست یعنی وجود ما غیر از وجود خداوند متعال نیست و وحدت شخصی هم غیر از این نیست در نقد این آیه هم به نکات اشاره می کنیم اولا اینکه در این آیه و آیه قبلش خیلی واضح است که خداوند متعال اول گلی را آفریده رضا اول گلی بوده و قالب گلی بوده که خداوند متعال اون قالب گلی انسان رو آفرید بعد در اون دمیده خب این طبعاً هیچ ربطی به وحدت شخصی وجود نداره که همه چیز همون وجود خداست و قبل از این ای که خداوند متعال انجام داده گل بوده قالب گلی بوده اگر بنابوده که تمام خلقت به همین نفخه باشد و این نفخه اعطای وجود از جالب خداوند متعال باشد اعطای وجود خودش به سایر مخلوقات باشد همون نفس رحمانی باشد همون وجود عام باشد اگر بنا بود که این گنه باشد خب دیگر اون گل و قالب گلی قبل از نفخه معنا نداشت و باید اون گل و قالب گلی هم به همون نفخه پرید میآمد لذا آیات قرآن و این آیه شریفه اینجور بیان میکنه که خداوند متعال این قالب گلی رو آفرید و بعد خداوند متعال در اون دمید لذا اگر این که وجود ما همون وجود خداوند مطالح هست به همین نفخه باشد خب پس اون قالب گلی و اون گل چگونه خواهد بود یعنی که پس مقداری از وجود ما مثلا وجود خداست مقداری هم نه وجود خدا نیست و همین که غیر وجود خدا رو ما ثابت کردیم خود این هیچ مناسبتی با وحدت شخصی و وحدت وجود ندارد بلکه این رد وحدت وجود هم می باشد که نه وجود منحصره در وجود خداوند متعال نیست نکته دومی که باید اشاره بکنیم اینه که حالا این ای که خداوند متعال در این آیه شریف روح رو به خودش داده است این از این باب نیست که روح همون روح خود خداوند متعال مثلا باشد و خداوند متعال هم مثلا جسمی داشته باشد و روحی نستجیر رو به الله که حالا از اون روح مثلا خداوند متعال در اون دمیده که داله بر جسمیت خداوند متعال تکسر خداوند متعال تعدد خداوند متعال مثلا این میتواند باشد بلکه نسبت دلیل مختلف و سبب های مختلفی میتواند داشته باشه گاهی اوقات نسبت از باب ملکیت یعنی من مالک این هستم گاهی اوقات از باب تعظیم هست نسبت و اسباب متعددی این نسبت و نسبها می داشته باشد لذا روایات فراونی در این زمینه وجود داره که بیان کرده اند دلیل این نسبت روح رو به خود خداوند متعال در کتاب معان الاخبار مرحوم شیخ صدوریشون نرمی فرماین ابی از پدرشون ان علی ان ابی که همین علی ابن ابراهیم باشد که از پدرشون ابراهیم ابن حاشم نقل میکنن ان ابن ابی امیر ان ابن ازینه ان محمد ابن مسلم که همه جز سقاط هستن قال سألت ابا جعفر السلام از آقا امام باقر علیه السلام سؤال کردم من قول الله عز از این قول خداوند متعال عز و و نفخت و فیهم روحی من از روح خودم در این قالب گلی انسان نفخ کردم قال حضرت فرمودن وقتی که محمد ابن مسلم که جزوه عجل بسیار جدیل و قدره جزوه اصحاب سر هست اگر مطلبی بنابود حضرت بفرمایند به جناب محمدت نمسلم میفرمودند در عین تعظیم ها و تجلیل هایی که حضرت از اون فرمودند وقتی که از حضرت سوال میپرسه حضرت میگه قال روحون اختاره الله یک روحی بوده که خدا اون رو اختیارش کرده و صفاهو اون رو برگزیده و خلقهو و اون رو هم خلق کرده یک عمر مخلوقی بوده یک چیزی بوده که خداوند متعال اون رو آفریده است اون رو خلق کرده است و اضافه او الی نفسه و بعد این رو به نفس خودش اضافه کرده و او علی جمیع الارواح و بر سایر ارواح این روح رو که روح انسان باشد خداوند متعال فضیلت داد و برتری داد فعمرا فنفخ منه فی آدم علیہ السلام از این روحی که خود خداوند مطال اون رو هم خلق کرده اما خب چیزی است جدای از این جسم انسان جدای از این گل انسان جدای از این قالب گلی انسان خداوند مطال این خلق خودش رو که بر سایر ارواح هم اون رو برتری داده اون رو خداوند متعال در این قالب گلی انسان دمیده در روایات دیگری حتی مرحوم کلینی در کافی شریف خودشون یک بابی رو در این زمینه دارن در توضیح روح که در اونجا هم های جالبی در مورد این روحی که خداوند متعال در انسان دمیده آمده و نظیرهایی هم در این زمینه اهل بیت اسمت و تهارت بیان فرمودن چطور خداوند متعال میفرماید بیت الله گاهی اوقات این بیت به خود خداوند متعال اضافه شده خب این از چه بابی می فرماید خلیل الله خب خلیلی که مال خداست بیتی که مثلا، مال خدا به یک جهتی منصوب است به خداوند متعال آیا معناش این است که مثلا خداوند متعال در اون ساکن هست واقعا نه خب اینگونه نیست بلکه این هم یک مخلوق است و رفتی به سکونت ندارد حقیقتا بیتی نیست که خدا در اون ساکن باشد اما خوب خداوند متعال به جهاتی اون رو به خودش نسبت داده در این زمینه هم این روح یک مخلوق است که تصریح روایات فراوان در این زمینه آمده مرحوم علامه مجلسی هم روایات فراوانی رو در این زمینه جمع کرده لذا این آیه شریفه هم که نه تنها که ظاهرش بسیار واضح است که ربطی به وحدت وجود و وحدت شخصی ندارد و بلکه رد وحدت شخصیه هست روایات هم در این زمینه همه متزافر و کاملا بیان کننده این مطلب هستند که حقیقت اینام روح یک مخلوقی بیش نیست دستی بعدی و آیه بعدی که به اون تمسک کردند برای وحدت شخصی وجود و وحدت وجود این آیه شریف آیه بیست و سی سوره است که هست که به قضا رب و که اللا اللا خداوند متعال به غذای خودش این اراده رو کرده حکم کرده خداوند متعال که جز اون پرستش نشود و به الوالدین احسان ها همینطور حکم کرده که به پدر و مادر باید احسان بشود و ادامه هم دارد این آیه که اما نه امدکل کبر فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما که به اونها اف نگویید و با قول کریم با اونها صحبت بکنید به این آیه کسانی جمله ابن عربی و کسان دیگری به این تمسک کردند که حالا دلیلی بر خیلی حالا نام بردن اونها نیست که این آیه در مقام بیان این است که دارد حکم تکوینی خداوند متعال در این عالم رو بیان می کند که خداوند متعال حکم کرده است که جز او پرستیده نشود لذا همه الزامن خدا رو میپرستند چون حکم الهی تخلف تکوین الهی تخلف ناپذیر اراده تکوینی خداوند متعال تخلف ناپذیر لذا همه خدا رو می‌پرستند لذا اون کسی که به‌ظاهر دارد بت می‌پرستد اون کسی که آتش می‌پرستد اون کسی که گل می‌پرستد اون کسی که ستاره می‌پرستد و سایر چیزها رو می‌پرستد همه اینها دارند خدا رو می‌پرستند چرا چون وجود اونها همون وجود خداست وجود اون بت همون وجود خداست وجود اون آتش همون وجود خداست اینها غیر خدا نیستن لذا هر کسی در این عالم هرچرا بپرستد خدا رو پرستیده و این پرستش بط و امور دیگر این تخلف این حکم تکوینی خدا متعال نیست که جز او را نپرستید چرا؟ چون همه همون خدا هستند و وجودشون وجود خداست و این خب مفاد وحدت شخصی وجود هست در نقد این خب ما باز به انایات اهل بید علیه مسلم نکاتی رو بیان نکنیم یکی این که اون چیزی که از سیاق این آیه کاملا مشهود هست اینه که در اینجا این حکم و امر خداوند متعالی حکم است و خداوند مطال به نحوه تشریعی دارد بیان میکند چرا؟ چون به همین الله تعبد و الله ایا یک عبارت دیگری هم عطش شده و دین به احسان احسانا و همون کلمه قضا دوتا حکم بیان شده یکی عدم برستش غیر خدا و دیگری احسان به والدین و خود وحدت سیاق و سیاق این آیه شریفه که با عطف هم هست به جمله ما قبل معلوم است که در احسان به والدین در اینجا حکم تشریعی مورد نظر است و اگر در اینجا در احسان به والدین حکم حکم حکم تکفینی بود لازم می‌آید که می‌آمد که هر کسی هر اهانتی به پدر و مادر خودش انجام میداد، اون احسان به پدر و مادرش بود و دیگر طبعا تعبيرات بعدی هم معنایی نداشت که ولا تقل لهما اوف به اونها اوف نگوید. چرا چون این اوف هم احسان به پدر و مادر هست به تکوین الهی اگر بنا بود تکوینی باشد خب همه اینها دیگر میشد بی معنی و ما لهما قولا کریما میشد بی معنی و اگر کسی حتی پدر و مادر خودش رو هم جهنمی بکند اگر بخواهیم تکوینی معنا بکنیم یعنی احسان کرده است به پدر و مادر. کسی که پدر و مادرش را استجیر و بله خسرت دنیا و آخرت هم بکند باید این تکوین باید این احسان کرده باشد به پدر و مادر که این کاملا واضح است که به هیچ نه به صدق احسان در این زمینه نمی و عبارات و کلمات کلمات با معنایی هست و ظاهر این آیه کاملا مشهود هست که در این دو حکم تشریعی خداوند متعال مورد نظر است نکته دوم اینکه که طبق این آیه خداوند متعال اگر بنا بود که بخواهد به نحوه تکوینی بیان بکند و بنا بود که خداوند متعال وحدت شخصی رو بجو بیان بکنند دیگر خداوند متعال نباید می‌فهم میفرمود که به لسان استثناء و استثنای مفرق نباید میفرمود که شما هیچ چیز را جز خداوند متعال عبادت نکنید که در اینجا اولا اثبات چیزهای دیگر هست به حسب ظاهر و بعد نفی عبودیت از اونهاست بلکه خداوند متعال باید اینطور می‌فرمود که شما هر چیزی را که عبادت بکنید اون همان عبادت خداست و شما خداوند متعال رو عبادت کرده اید لذا شما از این جهت هم به ظاهر آیه تمسک نکرده اید که ظاهر این آیه با اثبات شیعیت سایر اشیاء و نفی عبودیت از آنها و نصار عبودیت در خداوند متعال به این است که این فلوقه رد وحدت وجود و, و وحدت شخصیه را می مطلب سوومی رو که می خواهیم بکنیم این است که در لسان عیمه معصومین علیه مسلم که اینها چیزی رو برای ما کم نزاشتن همه این امور رو برای ما تبیین کردهاند، این آیه رو هم برای ما تبین کردن لذا روایتی رو ارز بکنم در محضر عزیزان این روایت در کتاب فخر رضا آمده کتاب فقر رضا است بسیار جلیل لغت که مرحوم علامه مجلسی می که من این کتاب رو به خط خداقا امام الله علیه السلام به دست خط از و اجازات و عبارات فراوانی از اصحاب و علما من این کتاب رو رایت کردم و برایم یقین حاصل شد که این کتاب مربوط به آقا امام رضا علیه السلام و کتاب خود حضرت هست در این کتاب شریف این روایت را نقل فرمود حضرت می‌فرمایند امیر امیرالمؤمنین علیه السلام مشیت الله و ارانته از آقا امیر المومنین شد از مشیت خدا و اراده خداوند که حدیث مفصله تا به این عبارت که حضرت میفرمایند فرمایند ولی القضاء و اوجه برای غذای الهی که در این آیام هست که به قضاء چهار وجه و چهار نوع وجود دارد ولی القضاء و اوجه فی کتاب الله تعالی الناطق علی لسان سفیر صادق در کتاب خداوند متعال برای قضا کتابی که خداوند متعال به لسان اون پیامبر صادق خودش فرستاده چهار معنا از قضا در کتاب خداوند متعال در قرآن اراده شده منها قضا خلق و هو قوله تعالا فقضا هن سبع سماوات في يومين قضای خداوند متعال در خلق, در خلق کردن کما این که این آیه شریفه آمده خداوند متعال قضای خودش رو جاری کرد سبع سماوات در هفت آسمان مثلا یا هفت آسمان رو خلق کرد خداوند و متعال و سبع سماوات فی یومین هفت آسمان رو در دو روز خلق کرد و الثانی قضاق الحکم و هوا قوله تعالی و قاضی بینهم بالحق معناه حکم و این آیه شریفه و این نوع دوم این است که قضای الهی و معنای خداوند متعال حکم می کند بین اونها قضاوت می کند مثلا بین اونها و این آیه شریفه که و قضیه بین هم بالحق خداوند متعال به حق در بین اونها حکم کرد و سالس قضا الامر سومش اون قضای امر الهی است و قوله تعالی و قضا ربو که الا تعبدو اللہ معنای صف از قضا امر الهیست این از خداوند متعال امر میکند و حضرت همین آیه شریفی مورد بحث رو مثال میزنند که فرموده خداوند متعال که جز اون رو عبادت نکنید معناه امر ربک یعنی خداوند متعال امر کرده است که جز اون رو عبادت نکنید و به پدر و مادر احسان بکنید که همون احکام تشریعی خداوند متعال هست ار رابع قضاء العلم و معنای چهارم و استعمال چهارم و وچه چهارمی که از قضا در قرآن آمده اون علم است. و ها قوله تعالی و این فرمایش خداوند متعال هست و قضاینا الابنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارز مرتین معناه و علم نام بنی اسرائیل اینی که قذعی نائلا بنی اسرائیله فکر دابرت و فسدون نفیل عرض مرتن یعنی که خداوند و طال ما علم داریم به بنی اسرائیل که اینها در زمین دوبار فساد میکنند و این علم مثلا در کتاب سبت است در لوح محفوظ سبت است و این معناي چهارم علم هست لذا کما اين كه مشاهده کردیم در این آیه شریفه هم وجودات نازنین عیمه معصومین کاملا معنا رو برای ما بیان فرمودند و این آیه شریف هم نه تنها که به ظاهرش رفتی به وحدت وجود و وحدت شخصیه ندارد و رد وحدت وجود هم هست طبیعین های عیمه طاهرین علیه مسلم در این زمینه جامع و کافی هم می باشد خب بحمدالله بحث از آیاتی که به اون آیات در وحدت وجود استدلال شده رو در همین جا انشاءالله به پایان میبریم و جنبندی بحث این شد که تمام آیات قرآن به سراحت فریاد میزند نفی وحدت وجود و وحدت شخصیه رو و این آیاتی رو هم که به اونها استدلال کردن و به اونها تمسک کردن نیز نه تنها هیچ دلالتی بر وحدت وجود ندارند و ائمه معصومین هم کاملا همه معانی اینها رو بیان فرمودن اگر اهل تعبد هستیم اگر اهل تمسک به این حبل متین الهی به وجودات نازنین ائمه معصومین هستیم و دمخانه اونها نشستیم، شیعه اونها هستیم که باید از اونها تبعیت بکنیم، اونها هم کاملا معانی این آیات رو بیان فرموده بودند که جای شبهی برای کسی نماند، همه اینها علاوه بر اینکه خود حتی این آیات به هم عرض شد که همه اینها هم به صراحت دارن نفی وحدت وجود رو میکنن و نفی وحدت شخصیه رو می رضا می میتونیم به نحو محکم بگوییم که در سرتاسر سر کتاب خداوند متعال هیچ دلالتی بر وحدت وجود و وحدت شخصی نیست و بلکه همه اونها به صراحت رد وحدت وجود و وحدت شخصی خواهد بود ان الله در بحث بعدی به بررسی روایاتی که در این زمینه وارد شده و به آنها تمسک کرده کردند برای اثبات وحدت شخصی وجود خواهیم پرداخت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته